جلسه بیسته هشت بیست هشتم، قواد فقه و سیاسه 21.10400 محسسه آموزشالی امام رزا علیه السلام هفته 14 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه سیدنا و نبی نعب محمد و علیه اهل بیت تارین المعصومین سی اما الله اللہ فی الارزین روحی بر الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به بیانبر گران و اهل وید اتار علیه السلام بحثمون رو تکمیل میکنم ارز ما به اینجا رسید که از این هفت میار اون میار هفت اول اصلا در ارز در طول اونها نیست اصلا کامل با تو همه مراحل باید باشه ما اگر حک... حکمش واقعا بگیم مساویه دیگه چه بچه ترجیحی داره ما بخواییم حرف شاره رو بگیم اگر از اون مثل سنجیا از اون میارها تساوی ترجیح حکمی به دست میاریم به درد میخوره ولی اگه ترجیح حکمی به دست نیاریم میتونه خلاصه ما ما رو برگردون اون تساوی حتی اگه ترجیح عقلی آوردید اون ترجیحه رو این نکته هم اضافه کنیم در واقع ممکنه ما تفکیک کنیم بین ترجیحات الزام آور این یه نکته است ترجیحات الزام آور عملاً بسان و همسان با در واقع الزام آور غیرش غیر منصوص همسان در واقع همسان با ترجیحات شرعی تح شوند یعنی چی به شرطی که با به شرط احراز وجیت مثلا از ملازمه عقل و شهر استفاده کنیم و هر نکته دیگه ترجیحات الزام آور غیر محسوس اما ترجیحات غیر الزام آور این در حد حتی, حتی منصوص و غیر منسوس. این در واقع در سطح استحباب و پیشنهاد خواهد بود درسته بگیم در سطح استحباب شرعی یا ترجیح اقلی خواهد بود ولی نکتهش اینه که استحباب شرعی حسن خودشو داره جنبه شریعت داره ترجیح اقلی ترجیح اقلی اگر نتوانه اگر نتوانه از طریق ملازمه خلاصه جنبش در واقع حاکی از حکم شرعی باشه نمیتوانه خلاصه همسانه نمیتوانه در همسوء یا در سطح حکم شرعی باشه در سطح استحباب شرعی باشه چرا این نکته را می کنم؟ چون که برخی بر حال قائلانه به ملازمه این, این مورد رو این ملازمه رو در احکام الزامی مرد نظر قرار میدن نه اینکه در مستحب بگن اقام این ملازمه عقل و هست لیزا یه محدودیتی به تعبیر دیگه محدودیت خلاصه استنباطی در احکام غیر الزامی عقلی ما داریم این به این معناست یعنی خلاصه میخوام عرض کنم که وچه ترجیحان رو تفکیق قائل بشیم الان معیار اصلی برای ما معیار اصلی چه؟ اون ترجیحات الزاماور شرعی یا عقلی کاشف از الزام شر... الزاماوری شرعیه درسته چون ما الان میخوایم ترجیحات با نگاه شرعی حل کنیم اگر هم عقل تجویز کنه باید در واقع به تعبیر دیگه ترجیحات عقلی باید محر باید به حجیت عقلی به حجیت شرعی برگرده یه حجیت شرعی باید پیدا کنه صرف عقل برای ما خلاصه کافی نیست ما چون که داریم استمراد میکنیم در واقع در مقام استنبات شرعی این نکات وجود داره ما دنبال صرف عقلی سیم عقل قبول داریم اما این میار اصلی که ما به کشف شرعی برسیم این سر جای خودش خب الان برگشتیم به اون رتبه ها اون فرمایش دوستان که منم یه جایی قبول داشتم میخوایم اون رو شفاف کنیم که آقا این هفت رتبه آیا واقعا درستی یا نه ایشا که استطلال نکرده اولی قابل جمع با اوناست بلکه الباقی باید به اون برگردند دومی یه ترجیح محتوایی داره دست ما نیست در واقع ترجیح اون مورد یه ترجیح منطقیه خلاصه تقدم اعلان رتبتن این دست ما نیست مقتفاوت ماهوی این دو تا مقتضی ترجیح اعلان رتبتنه و لذا حرف باطلی نیست مگر اون که البته در مسادق در مسداق شناسی موردی در واقع در واقع در رتبه بالاتر قرار نگیره تقدم اصلا رتبی نداشته باشه در واقع ما مستقشناسی موردی معلوم شود که خلاصه اون مورد یک مورد خاص اصلا در جایگاه بالاتر قرار نداره اما اگر خلاصه اگر جایگاه بالاتری داشتی واقعا اگر ضروری بود بر اون رتبه بعدی مقدم میشه با جایگاه بالاتر رتبی دست ما نیست بر جایگاه پایین تر خلاصه مقدم میشه این دست ما نیست این خلاصه بر کاشف از اون ترجیح خلاصه حکمیه این اگر واقعا درست ما تشخیص داده باشیم که این از مقولیه ضروریه اون یکی می میتوانه در واقعی کاشه و از تقدم حکمی اون باشه اون مورد باشه این یه وسیله. اما اون بعدی که میرسیم الان از اعلا رتب اعلا رتبه رسیدیم به رتبه سوم ضابطه سوم اعلا نوعا بود میگیم آقا اینها هم رتبه هر دو ضروریه ولی یکیش مقدم نوعا کدام مقدمه میگم آقا حفظ دین بر حفظ جان مقدمه خب اینجا چی تو این در رتبه نوعی خلایی باید می شود اون بحث تزاهم خلاصه خود و دیگران رو داشت این یه بحثی عدم شفافیت در برخی مصادیق داشت یه مسئله دیگه این که آقا ابحان در خود اونها هست مثلا می حفظ دین مقدمه ابهام مصداقی در مورد در واقع رتبه گذاری ترتیب برخی ترتیب برخی انواع وجود داره آیا مال کاملا مقدمه ببخشید متأخر از جان یا نه اینجا به هر حال ما باید تکلیف کنیم البته با استنباط آیا مثلا در بحث دین دین الان مقدمه در واقع حفظ نو در برخ ببخشید حفظ دین در برخی از موارد به حفظ جان برمی‌گرده مثل چی مانند حفظ جان پیامبر و اهل بیت مگر اینکه مراد حفظ جان اونها نباشه در واقع خلاصه حفظ جان پیامبر خودش از مصادیق حفظ دین قوی مورد اصلا پیامبر نمیکیم ولی امر حفظ جان ولی امر مثل ولی فقیم میتوانه مستاق حفظ دین تلقی شود پوینتر تا حفظ جان برخی از مسلمانان هم مسلمانان معمولی هم یه جوری چیه میتونه در واقع میتوانه از مсаدیق حفظ, حفظ دین تلقی شه مثلا کجا الان میگم آقا در فلانجا کشدار کردند کشدار مسلمانان خب در واقع کشدار مسلمانان به ما و مسلمان کشدار مسلمانان به چه معناست کشدار مسلمانان به معنای در واقع اصلا از این جهت که مسلمانند به معنای در واقع مقابله و از بین بردن دین خواهد بود این یه مورد خب البته بعضی از اونا ممکنه بگن اینو ما قبول داریم این چون که دوحیثیتی حفظ جان حفظ مومن ما انو ما این نیست ممکنه در واقع محدودش کنن بگن خلاصه این مسادیق اصلا خروج موضوعی داره اصلا تخصصاً تخصصا از بحث خارج باشه پس میگیم آقا کجا جای بحثه میگم آقا من الان نمازمو بخونم یا پولمو حفظ کنم خب تو مصادیق معمولی اینجا دیگه جا داره دیگه الان این قسمت دوستان که میفرمودن آقا گیر داره اینجا واقعا یه جاهایی یه تضامعی هست اگر کسی مشروب نخوره الزامش کرد اگه نخوری میکشیمت حالا ولون که گاه طرف میخوره بعد هم میکشنه حالا اون یه بحث دیگه است ولی یه تضاهمات داریم اگر تضاهم بین این موارد باشه آیا نوعا مقدم اونی که تقدم نوعی داره مقدم نیست؟ اصلا پیش فرض اینه. یا باید بگیم در واقع مثلا حفظ دین بر حفظ مال مقدم نیست اصلا میخوام ارز کنم اینجا تصور و تصدیقش با همه این مسادیق خارج کنیم از بحث اینا یه جوری خارجن در واقع با فرض تفاوت نوعی بین بین خلاص مسادیق یک رتبه این عمر اصلا مقتضی در واقع تفاوت جایگاه و ترجیه اصلا موضوع همینه یعنی اگر میگیم اینه تفاوت نوعی دارن خب شما اشکال نداره مناقشه مستاقی کنید میگیم آقا جان مقدمه یا مال البته شما به طور طبیع خواهید که بستگی داره یه جای جان خب ایب نداره این تفکیکارو رو بیاریم بکنیم بگیم آقا همه جانیست در سه جا مقدمه در سه جا متاخره بحث استنباطی و همین دیگه الان در فضای اهل سنت اینا که روی کرده مقاصدی دارن همی مطلق میگن حفظ دین حفظ جان حفظ مال اینا یه ترتیبی داره شما استستانس شو بگید بگید بستگی به مال داره اگه مال کم باشه مال زیاد باشه مثلا اگر مال من یک میلیارد باشه من شرعاً اجازه دارم اون برم خودمو به بدم تا این یک میلیارد حفظ بشه اگه مال خودم باشه یا بگید نه آقا تو اگر مال مال خودت باشه چه کم باشه چه زیاد باشه اشکال نداره باید دید که آیا در این موارد امکان تفصیل وجود داره یا نه مثل چی؟ بگیم که مثلا به مثال تفکی که در واقع و تفصیل بین حفظ جان خود و مال دیگران و چی؟ این یه فرض حفظ جان خود و مال خود مخصوصا ببینجه اگه مال زیاد باشه خب ممکنه بعضی رویت پیدا کنه آقا کسی در بربرای حفظ مالش یا مثلا جانش خانوادش مثلا کشته بشه مثلا شهید حساب میشه نداره این رو بیاد جواب این رو مستند کنید مقاله خوبی بشه همین حفظ جان و مال و اینا رو بگید آقا در پنج مورد این حفظ جیان مقدمه در دو مورد مثلا اگر پول خیلی زیاد بود اشکال نداره من پول خودم حفظ کنم شر به من اجازه داده من کشته بشم ایب نداره اثباتش کنید اگر مال مال دیگرانه و زیاد باشه خب مثلا الان یه چماقی این بنده خدایی که جنگلبانه به این جنگلبان یه اسلحه میدن خب یا اصلا نمایشیه یا برای حفظ اون پرنده که میان دزدی میکنن شما این اصله رو که به دستش میدی اجازه داره شلیک کنی خب یه موقع طرف میترسه خب ایب نداره در میره ولی آیا حق داری طرف میبینه که نه شما اصلا فقط اصله میگیری شلیک هم میکنی ولی قانون به شما گفته که شلیک هوایی کن به طرف نزن این دیگه که ترسش میرسه میگه هیچ موقع با نمیزنه اما اگه اصله به دستش دادی از جد شرعی آیا این اجازه داره که طرف بزنه لطو پار کنه بزنه بکشه برای حفظ یا پرنده یه مثلا در معرض خلاص زبال سره این میاد شما میره فیلم میسازید یه سریال هم درست می‌کنید میارش هم همین میذارید اصلا سر همینه طرف میره مدتا زندان میفته در لب محاکمه است که آقا این خلاصه زده طرف کشته یا نکشته خب اینجا باید اول حلش بکنید تا بعد به جامعه هم بگید خب آیا اینجا امکان پس سوال اینه که آیا امکان تفصیل وجود داره اگر خواستید بفرمایید که این معیار به درد نمیخوره یا باید کلش رو زیرش بزنید بگید تقدم بین دو نوع امکان نداره یا از این 5 6 تا نوع بگید این دوتاش مقدم میشه اون سه سف بر سوم مقدم نمیشه اینو لیست کنید پس این سوال هم در مقام استفداف ما علما میتوانه بیست استفتاف پیدا کنه مسادق خیلی زیادی ما الان میخواییم اون ذهنیت دوستان رو شاکل بندی کنیم که اون نظم ذهنی رو حاصل بشه بعد ببینیم چون این ترتیبی هستانه خب آقای از این هم بریم جلوتر پس اجمالاً اینجا می توانیم بپذیریم هم فرم. حالا دوستان اگه نقدی دارن میگن اجمالاً می توان پذیرفت که با فرض حتی اجمالاً هم نگیم می توان پذیرفت با فرض تقدم نو یک نو انواع بر یکدیگر انواع چیه 5 تا دیگه جان و مال و دین و عقل و ارز و آب رو حالا ممکنه تقدم وزش رو نپذیری برف... تقدم همه رو بپذیری با ان... فرض تقدم انواع بر یک دیگر طبیعا خود این فرض یعنی چی در واقع ترجیح بین اونها الزامی خواهد بود اگه فرض رو قبول نداریم یا استثناء میزنه اون یه بحث دیگه است در واقع عدم پذیرش تقدم برخی از انوا بر برخی دیگه این ترجیح ای ترجیح مزبور امکان نداره امتنا داره امتنا شری داره گفتیم آقا محجم نیست دیگه ممنوع خواهد بود خب اینجا دوستان اگر فرماشی دارم به در بین دو نوع یکی از دو تقدم داره اگر گفتیم تقدم رتبی داره در واقع یعنی وقت مقدم بشه اگر تقدم نداره خوبی چی؟ مساوین خب اینجا ببینید تو این مورد فرماشید دارن تا بعد برسیم به مورد بعدی بله صدارو دارم جایی صداس رسید رسید نگاه کنید اخه دوستان میفرمودن که آقا فرض خارج متفاوت با این فرض نظریه این بنده خدا اصلا توجه نکرده که در عالم میرون این طرف یه ترجیاتی داره اون طرف یه ترجیاتی ما داریم میگیم که آقا اگر یه طرف تقدیم رتبی داشته باشه این دیگه خودش هم مقدمه نکته بعدی اگر این تقدم نوعی داشته باشه اون ویژگی ها ممکنه وجود ترجیح باشه ولی اون ترجیحات به درد نمیخوره چرا؟ چونکه این اساسی تر رد مثلا حفظ دیم و حفظ جانه اولا اینکه که جا جان یا ویژگی جا داشته باشه مگر اونی که من مطرح میکنم حفظ جان پیامبر اون تخصصا بحث رو میبر جای دیگه خروج تخصصی بود اونی افعال میکنه اما در شرایط دیگه همین که مقدم باشه ولی این که اون یه ترجیحاتی دیگه داره اما و باشه یه ترجیحات دیگه داشته باشه با اون ترجیحات عمل نمیکنیم. یعنی این که میگیم این ترجی بنونا الزامی خواهد بود به این معناست که در نتیجه دیگر وجوه خلاص تقدیم خلاص لحاظ نخواهد شد نتیجه مهم اینه این آقای سو صحبت داره این می توانیم حالا نگفته ولی برفرض اگر ما این فرض گفتیم آقا پیچیده تر هست فرض چارم پنجم هم هست این بخار را آیت کنه میتوانه چون پاسخی بده یا ما خودم اونجور بگیم اگر واقعا یه طرف تقدم نوی داشته باشه یا تو مرحله بس قبلی واقعا تقدم رتبه ای داشته باشه در واقع این مشکل رو اینجوری باید حل کنه دیگر وجود تقدیم هست لحاظ نمیشه نباید بشه چرا؟ چونکه گفتیم آقا این نوعش مقدمه اگه نوعش مقدمه یعنی هر ترجیح اون طرف میخواد داشته باشه پس سرموش فلانی باشه دایش فلانی باشه این خیلی قویه کل باشه خیلی آدم خوبی باشه تو منطقشان خیلی آمول منفعه باشه آقا این زده کشته ما میخوایم اعدامش کنیم حالا این مثالی که میگم از بحث ما نیست ولی تقریب بزن آقا این آدم خوب خیلی خ 20 تا مدرسه وقت کرد آه زده مندی مدرسه کشته خب همین که کشته ما دیگه با خوبیای دیگه اصلا کار نخواهیم داشت باید قصاص بشه خب پسر نوح باشه میخوام معلم باشه میخوام معلم باشه میخوام پسر شاه باشه هر خوبی داره دیگه کارش نداریم اینجا هم همینطور اگر واقعا یه چیزی تقدم نوعی داشته باشه یه تون میار قبی واقعا اگه تقدم رتبی داشته باشه اصلا دیگه دیگر موارد نباید لحاظ بشه از پاسخ ورده ای تو این مورد مورد بعدیار کار ندارم. ها. تو این مورد، مورد دوم و سوم این اصلا اقتضاشینه. البته باز هم یادآوری می‌کنم اینها در ارصون حکمه نباید باشه. برخلاف روی کرده. احل سنه این روی که اهل سنت این اعتبار یک کار خوبی کرده و بنده خدا احکام لحاظ کرده. بعضیا فقط مصلحت محور میرن جلو. ازشون بپرسیم احکام، اونها قبول کنن. ولی بعضی نمیرن. هی بنا سوال مصلحت. خیلی میرن ما قبل حکم ولی این مندی خود کار خوبی که کرده و حکم رو لحاظ کرده اون سر جای خود اما تو اینجا الان این مورد دوم و سوم، ظاهرن موجب بطلان و عدم لحاظ وجود تقدیم دیگه خواهد بود خب حالا اگه این رو میپذیرید بفرماید اگه رد میفرمایید هم بفرماید در نظره هده ای فرما وارد بسن مقام اقتلی خارجی داریم دیگه که مورده از اگر نکته دارید بفرمید پس اینجا میخوام از کنم که اگر یه ضابط کلی داریم اگر یه جایی فرض تقدم کلاس جایگاهی و سطح زباب باشه ترجیح بین اونها هم الزامیه عدم پذیر تقدم برخی از ان، برخی از اونها در واقع تقدم جایگاهی و رتبی برخی از اونها و برخی دیگر موجب میشه خلاصه با ترجیح ممنوع میشه خب حالا بریم بعدی اگر فرمایید باشید بفرمایید البته جلسه کلاس هم اینجوری داره تمام میشه بایست رت ولی اگر دیگه حالا نمیدارم ما طبق جلسات مباحث مربوط به تضاهم و این اهم و مهم چون این مسئله کار یه مقدار روی نو بیشتر باعث لباس باز دیگه هم داره تکمیل کنم یه کمی دوشباره بیشتر داره از یادآوری آوره می کنم چار مورد اهم بود اگر اون دوتا نوعشان یکی بود یعنی هر دو حفظ دین بود اگر هر دو حفظ مال بود اگر هر دو حفظ جان بود هر دو طرف حفظ آبرو بود خب ایشا میگه آقا اعم رو کن ما یکی مورد مورد پیدا کردیم بین خود و دیگران اصلا معنی مسئله فرق میکنه بعد ببینیم فتوا چه خواهد بود ممکنه کلا بگیم آقا ترجیح بر خود امور خود رو مقدم کن دیگران رو مگر اینکه یه قاعده بدانیم که کنیم، پیدا کنیم که بگه آقا دیگران و... شما واجب ایثار کنیم اگر وجوب ایثار رو ما پیدا کردیم، خب یه حرف دیگه است. اگر اون معقول باشه، این یه مشکل جدی داره. بهلاسه در اون بحث تضامن بین خود و دیگران اگر ای برای خلاصه وجود ایسار غیر خلاصه درست شد یا پیدا شد این کشف شد این حالا در حد قاعده در حد خودش خلاصه میتوانه تقریف کنه خب مثلا یه جایی فرض کنیم ممکنه مثلا در بین مفسد و مسلحت اگر تضاون باشه بگی آقا در المفسدن اولام جلب المفسد نه ها و خب این اگر باشه این دیگه کار نداره که طرف شماست یا طرف اون بر این معیار اصلا میبره سر چیزی دیگه اصلا کار نداره مثال از چیه؟ اگر قانون و قاعده درالمقصده در اون در یعنی چی یعنی اینکه یه طرف مقصده داره تضامم بین مقصده و منفعت و مصلحت اگر قاعده در آن مقصده مطلق پذیرفته شود به علمای ما از حیثای من در اون وقتم بعضی که نه آقا مطلق نیست اگر مطلق پذیرفته شود دیگه با یه طرف یا اون طرف کار نداره معیار ارائه داده و به تفصیل بین خود و دیگری میانجامه یعنی, چی؟ یعنی یه جا میگه خودت یه جایی میگه دیگران اگر طرف شما درول مفسده است، اون و جلب منفه از درول مفسده اولاست اما اگر اون تضاهمه بینه حق خودت و حق دیگری باشه یا قاعده ما داریم که بگه خود تقدیم دیگران کن ممکنه مثلا بگه آقا من ازرار, ازرار. خب مثلا اگر مثال حضیرش اطلاق قاعده زرر لا زرر و لا زرار میگه شما حق نداری به دیگران زرر بینم میگه خودم خسارت می‌بینم. ممکنه کسی خسارت به خود زرر به خود رو از اون تحت قاعده در بیاره قومی حرف دیگه است پس لیزا میگم اگر این قاعده مطلق باشه اطلاق شامل چی باشه حد در تزاهوم بین مفزده دیگران به مفزده خودم مسلح دیگر حال لاذر به مقصده مسل... میخوره دیگه. یا شامل مفصده و از مز... تظام من مقصده و م... مسلححت میشه به علاقه مقصد مقصده یا فقط مقصد مقصده علی باشه. ممکنه اینه مطلق قبول بکنیم لذا در که آقا یه جایی شما ما حق نداریم ولو اینکه ضربه به خودت بزنی حق نداری به دیگران ضربه بزنیم پس این نتیجه چی میشه؟ میگه نه آقا دیگه من حق دیگران را رایت که خودت ضرر میکنیم که بکنیم چون حق نداری به دیگران ضرر بزنیم پس تظاهام خود و دیگران اگر بگیم آقا هر طرفش رو بگیریم اگر مطلق بگیم که خود محیاره پس هنوز به احمامت فقطن نرسیدیم یه در زابطه این وسط برد بیاریم اگر بگه دیگرین این ترجیب بیار بازم اینجا کم داریم خب این پس اینجا الان یه خلح شد بین چهار و پنج بباشه بین سه و چار اینجا داره میگه یه کم بودی خود و دیگران رو حلش کن هر حلی میخوایی بدیم خب. انواع پوشید در واقع پاسخ ما داریم انواع پاسخ میشه محت... های محتمل در واقع یه طرف رو ما گفتیم یک پاسخ این بود که یک ترجیح مطلق خود پاسخ دوم ترجیح مطلق دیگران که ایمشه ایسار درسته ایسا رو یه جایی میشه تفصیل تفصیل مستنداتش چی بود مثلا خلاصه در المفسده رو ما بپذیریم، یا مثلا لازرار رو مطلق بگیریم پس این الان یه ظرف یه ظرفی هم اینجا مربوط مرهود بینه که تظاهام خود دیگران اگر بین تظاهام با فرد با دیگران بباشه یک نفر با دیگران ما خودمون نباشیم تظاهام بین دیگران باشیم اگر یک نفر باشه و چند نفر ایشان دوتا فرض میشه بگیم ممکنه بگیم آقا اگر آقای علف رو ترجیح بدیم ببینید آقای نجف آوادی. یه مقداری به این سمت رفتن که اگر زرر در واقع در اول تره اون چیه در تضاهم بین یک نفر و چند نفر چند نفر یک نفر هم غیر از خود میگیریم اینجا میشه فرض های مختلف اون چیه یکی این که تقدیم مطلق، تقدیم اعم که فرض آقای سوسو برند. یکی دیگه تقدیم یک نفر که این بعیده فرض سفر تفصیل ایشان نرفت تقدیم اهم خب تقدیم اهم شفاف معیارش داره میگه آقای اینو بیشتر هم دیگه خب حالا یه نکته این که تفصیل رو ما بر اساس چی با چه معیار بدیم تفصیل بین مساله و مفاسد مثلا چی بگیم در مفاسد حالا اینو فرض مختمل همه همینو باید مستند بشه ولی اول رو در نظر بگیرم اومد راحت تر آدم از استدلال ممکنه بره پیدا کن دیگه طبیعتا ما هم که نمی رسیم همینو رو بحث کن. ولی میخوام ذهنیت شما تقویت بشه اگه بین مفاسد باشه مثلا در مورد مفصده بود بگیم ترجیح اهم و که خودشان ایشان چه کار کرد؟ در هر سهیته مثلت مثلت, مثلت گفتش ا به چهارم شده اند بین مقصده و مسده کوعم و مقصد بین و مقصد مطلق پسشان الان تقدیم ام به صورت مطلق مطلق یعنی چی؟ یعنی در سفرض تقدیم یک نفر هم به صورت مطلق که این دیگه اصلا کسی بعیده چون چیزی بگه در سفرز اصلا اصلش کمی استعماق داره مگر اینکه مثلا میگیم یه نفر در موارد خاص. ولی این بحث ما موارد خاص نیست مثلا یه جای پیام بر باشه اون دیگه بحث مصداقه خاص تخصیصا خارجه موارد اخراد خاص تخصیصا باید اون از بحث خارج کنیم یا تخصیصا حالا البته ممکنه کسی بیار ورود و حکومت و اون حال با اون کار ندارم یعنی میخوام میگم یه جوری خارج از بحث خب این احتمال تفصیل بین مساله و مفاسد بگیم آقا اگر مقصده بود مقصده رو مثلا به یه نفر ضرر برسه بهتره که به خلاصه چیز در واقع ترجیح اهم و مفاسد یعنی چی؟ در اهم و ایشون رو مطلق گفت تو چه مصلحت مصلحت مقصد مقصده و مصلحت مقصده در هر دو در هر سه گفتش که رتبه چهارم عامه ممکنه شما تفصیل قائل بشین حالا به هر تفصیل دیگه پس اینم محتملات خب ولی اینجا الان ابهام وجود داره چون ایشون مستند نگرد دلیل نیورد ممکنه شما بگی آقا اکبر باشه پس یکی از اون ها اینه به جای اینکه ما اول کار بریم سراغ اعم و افرادن ببین سراغ اکثر و مفصدتن سراغ افصد و مفصدتن فکر میکنم فرمایش دوستانم جلسه قبل یکمی یک به این نزدیک میشد فرمایش آقای نروزین هم اگر بخواهم اونو شفاف کنم برای خودم میفرمودن که البته بیان آقای نروزین بود که آقا میعار مهم اعم و مهمه من قانع نشدم به این صورت که آقا خب ما هم زدیم مهم میخواییم خیلی کلیه میخواییم جزئیش ایش کنیم بر فرمویدن هیچ کدام تبدیم ندارم. من میخوایم میگم نه یه جایی ایشان یه تفصیلی هم اونجا من نوشتم فرمویدن بین امور عبادی و غیر عبادی ممکن متفاعت بوشه اینا هم حرفت جالبیه شدی که اصل احتمال شده در نظر بگیریم یه گیرشان این بود که در شرایط خارج همه شراط رو نمیشه مساوی گرفت نمیتوان خلاصه در خارج همه رو مساوی گرفت یه نقد کلی بودم سر جای خودش حالا ما اگر فرض کنیم مساوی باشه خب آقا الان آیا ام جلوتر باشه یا اکبر یا اطول یا آکد این تا به نظرم یه کمی دشواره در واقع. این دشواری اثبات ترتیب اینها اون قبلی ها راحت تر بود دشواری اثبات در زوابت چارگانه اخیر خیلی سخته البته یه ذره باز این اهم بودن یه کمی راحت تر را آقا اگه زرر میخواد بزنیم زرر به یه نفر بهتره یا به چند نفر خب خیلی روحت طرف میگه آقا به چند نفر ولی زود میشه شما پاسخ بدید بگید آقا اون یه نفر خیلی زرر میبینه ها یا این برده خدا باید زندگی ساقت بشه هزار مل... یه میلیارد پول داره 999 میلیونش رو داریم ازش میگیریم ولی یه موقع مای 999 میلیون رو از یه نفر نمیگیریم از زندگی ساقت بشه میریم از نو... هزار نفر میگیریم یه نفرام اضافه میکنیم اینا اذیت نمیشن بذار اگر ما مجبوریم مالیات بگیریم تضاهم بین این که یه پول داره از زندگی ثابث کج مثل کمونیستا بیام همه اموالشو مصادره کنیم تا اون پولشو به دیگران بدیم یا اینکه بریم از بقیه تضاهم بین این که حالا یکم شوخی شب بکنم وقتام زیاد گذشتیم و توی میخوام آیا ما بریم این فقیر بیچاره ها پول ازشون بگیریم یا بریم از یه پولدار بگیریم خلاصه ام تفکیک بین مفهوم تقسیم به تعبیر این نوعی نگاهی اینا که حمله میکردن به آقای منجدات می‌گفتند آقا شما می‌خواد جامعه رو گذاورده بیاریم مثلا از این ادبیات استادیم آیا ما بریم همه رو گذاه کنیم یا یه نفر رو گذاه کنیم تازه اگه تقسیمش کنیم به قول آقای منجدافاتی ممکنه خیلی ازیت کننده نباشه تقسیمش کنیم خب ایشان الان رفته استراحت چی؟ عمو مقصداتن در عمو مقصداتن ولی آیا تفصیل می‌شیم بدیم یا نه یا اول کار بریم سراغ اکثر و مقصداتن اون مبلغش رو میزان خسارت رو در نظر بگیریم کدام یعنی در واقع ابهام وجود داره یه طرف در واقع این ابهام وجود داره ترجیح اعم اعم رو بگیم حالا بگیریم بر خلاصه اکثر و مفزدتن یا بلعکس ایشان داشت میگفت چی؟ میگفتش که اعم رو بنداز جلو در رتبه بعد اگه مساوی بودن برو سراغ میزان خسارت میزان مسلحت خب، حالا اینجا ما ببینیم آیا عقلن حالا نصوص خیلی استقناهش سخته بعد از نکات اشاره اینا استفاده کنیم ولی فعلا ببینیم عقلن کدام مرجهه اصلا اون فرض پیچیده دوستان رو میگیم میگیم یه طرف اهم و مفسدتنه یکی اکثر و مفسدتن یکی یه طرف به ضررش به یه نفر زیاد میرسه یا به اهم آقای نه جف آبادی که نه حرف آقای سوسوه رو قبول کرد که آقا این خسارت رو بگم تقسیم کنیم خسارت رو تقسیم کنیم یعنی چی؟ یعنی این قابل تحمل در اه. و در اکثر و اگر درست حالا ببینیم تو قابل تطبیق یا نه اکثر و مفصدتن رو خواهشان راه اون آقا یه نفر رو به هی زیان نزن اگر درست فهمیده باشم یا درست تقلید کنم اگر اینجور باشه البته شاید برعکس بگیم میگه که آقا این به یه نفر ضرر نزند. این یه نفر دوست معیار چرا؟ که این خسارت به این خیلی سنگینه این از زندگی ساقت میکنه اون خسارت تقسیم کنه در واقع اگه معیار تقسیم خسارت اگر محوریت پیدا کنه این خلاف دیدگاه سوسوهه درسته تو خسارت ها و زرن ها پس این رو الان یه مقداری شاید بیانهشان یه ذره عرفی باشه میگه آقا به یه نفر زرم نزن این تقسیمش کن. به اونا هم داره خسارت میزنه حالا اگه منفعت باشه چی؟ منفعت هم همینطور تقسیم غنایه و منافع بین اکثریت هر کسی بزاره یه اپنوات برسه یه سی بی برسه به جای اینکه شما همه اینا رو بدی به یه نفر یه نفر تو جامعه بره بالا این پول رو خواهشن تقسیم کن اینجا الان به حرف کی رسیدیم این تقسیم بین اکثریت تو بحث منفعت داره میافته جلو در واقع اگر بگیم تقسیم قنایم تقسیم منافع بین اکثریت بکن میگه به یه نفر منفعت نده پس اینجا الان اعم رو ترجیح داد اما اونجایی که بحث اعم و مفصدتن میگه تقسیم خسارت بکن اونجا اعم رو ترجیح نداد در اعم اه و مفصدتن بود در واقع میگه مفصده یه نفر رو بپذیر نه ببخشی نپذیر در واقع میارش این که میگه در اعم و در اعم و کن ببخشید در اکثر و مفصدتن کن میگه تقسیم چی کن تقسیم خسارت کن پس ملاکش برعکس شد تو مفصده پس بین اگر منفعت باشه شاید بعضی‌ها بیان میگن آقا تو پس قائل به تفصیل ممکنه کسی بشی حداقل بین این دوتا شبیه این بین اطولم ممکنه تر بشه و اون یکی موارد حالا پس اگر یه موقع در خدمت دوستان بودیم تو این بحث حالا جلسه جدایی من ضبط کردم فرستادم بیاین که در ترم بعد این رو وارد شدیم یا حالا ممکنه این دیگه جمع کنیم بریم قواعد دیگه بپردازیم یا قواعد مرتبط با این بحث رو جدا ووض کنیم که هناوین قواعد ولی خود این منطقه رو باید تکمیل کرد واقعا مورد نظام نیاز نظام جامعه نیاز سیاسی مجله سیاه میخوان قانون گذاری کنیم و چهار تا میارش اف بدیم همه کاران معمولا تظامی این کار ترجیح پیدا کنه اون کار در قانون گذاریم دچار این مشکلیم تصمیم گیری، تصمیم سازی منافع مثلا ما الان فرض بگیریم بحث عزت و بحث اینا رو کار نداشته باشیم اونو پیچیده تر میشه بگیم که آیا مثلا ما الان یه خسارت ببینیم در برجام مثلا خسارت فرض کن موقع هزار میلیارد باشه یا خسارت نگیم عدم من فهد باشه چون نفتمون رو نمیفروشیم به معنای ارفی نگیم خسارت عدم المن باشه از ما نخرن اگر بریم ولی از اون طرف حسته ای رو اگه به دست بیاریم مثلا 1100 میلیارد از این به دست میاریم این میشه مقایسه بین دو تا پول خب میگیم این ترجیح داره ولی ممکنه شما بیاید بگید که نه اینجا میار کیفی بیاریم حفظ اقتدار ممکنه زرر مالی زیاد باشه منفعت کمیش زیاد باشه ولی ملاک مثلا حفظک در واقع عزت باشه این عزت تو این پنشیشتا دیگه نیست اگر بخوایم بیاریم به اون میار نو برمیگرده و رتبه منتا اون نو رتبه در اون تقلقی مقاصدی اون 5ش تا عنوان محدود بود. مگر اینکه به یکی از اونا بدبر مثلا حفسه عزت رو بررگ به حبظ دین ولی بعض از این متأخرین آمدن در واقع اونا رو تکمیل کرده پس یه نقد کلی هم اینکه عدم ای شفافیت نمیگم عدم لحاا، عدم شفافیت یا عدم لحاظ مهار کم کیفی، مانند خلاصه عزت مصلحت حالا مصلحت یه جوریه مصلحت چون خیلی چیزای اینجور ظاهری هم می‌خوره کیفی مانند عزت و آبرو حالا آبرو باز اونجا تو ارز بود دیگه منظور اونجا ارز فردی بود عزت استقلال چرا گفتم عدم شفافیت چون احتمال ارجاع به در واقع زابطه و دوم و سوم وجود داره در چه صورتی در صورت تعمیم اون موارد چون بعضی گفتن آقا مواردی که قدیمی ها گفتن اینا خیلی خوب نگرفتن با میار فردی گرفتن لذا مثلا یا آقای عطیه هست به وکیل بود تو شیخن از این ها این کلی از این میارا یا مثلا ابن آشور اینو گفتن آقایی پنشتا هفزا پنش کمه اینا فردیه بیاد بیس و شیشتاش بکنیم سفتا بکنیم چند تا. این آقای عطیه آمد خیلی تعمیمش داد حالا اونا جای بررسی داره فیل جمله میگیم این میارای کمی کیفی کجا لذا من روی این قسمت که مقدار اصرار دارم تأکید میک اهمیت کلیدی برای نظام و اداره جامعی داره آقا بوضوع می‌خوام یه مقدار جلسه یه مقدار طولانی شد دیگه آخر ترمه ما رو ببخشید حالا دیگه یاد جلسه دیگه هم زبط میکنیم تشکر البته